من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد الله عليه وسلم وآل از شدنی مسئله شما با خودشون چندان سمره مهمی نداشت بیشتر متعرض کلمات کلمه استاد سمره مستاد در بیان دی رو در بیان نشفاقی با کلام نیشن شد دیروز در تحریر مسئله کردیم، سرمی به تحریر مهنده دار و تاریخ مساله و سمره مسئله که تقریباً پخصه با همدیگی دو رو تقریباً نهایتاً بردسی شد به این نتیجه رفتیدیم که با ملاحظه کلمات احل شنن در این مسئله معلول میشه که این مسئله خطابات شکابیه در اون مرحله اول که از سالهای تا سالهای دیوی این مسئله مطرح نبوده یعنی همچنکه این مسئله در روایات ما مطرح نشده به عبارت دیگر این من و تمسکه به خطابات قرآنیم در موارد زیادی کردن یا مثلا اصحاب همه کردن هر فرق دیدن یا هی جرح این وحس مدرح نشده که این خطابات شامل ما نمیشه مثلا این صحبت نمیشه و که از کلمات آمه یه بود که شماعه نمیشه کردن خود آمه هم در این قسمت محتفه هم. یعنی خود آمه هم در کتابشون مرحیم کردن که در اقل فوقها به عموماتی کتاب و عموماتی کتاب تمسک میکردن تقصیم اینها نشون میده که این مسئله که طبیعاً تقسیم ما جز به قسم دورم و مراحص و اصوله قسم اول در منابع پشریف مثل فیاس و رعی و میدون چیزی ها قسم دومه در استظهاراته ما از پر این اصول کندم به دو قسم تقسیم میشه قسم دومه شد استظهاراته استظهار ها از برن اول شروع شد تا برن دوبان اواطر قرن دوبان از سه جدا شد استظهار ها فکر مثلا فکر سیخه افراد داره بر می کنه خلان مورد واجبه چون ظاهر آیه همه یکی نه همه در باران داره بر وجوب نمی کنه این بس وقتها جدا شد شایست که یک قلب مسئله بروجوب میکنه یا در از بروجوب نمی کنه ما یه رسوش حصول, یعنی حصول رو به دو قسمه اساسی. قسمه قسم اساسی اسم اول دوم قسم دوم باید اینجوری بشه در اول و دوم از کلماتی چه مسئله در اول و دوم نشده من این مسئله بعدها در از کتو بحر سنت دیدن نمیشن مدونه علاقه طاول مشابه لکن اینها در خود فقه ابو حنیفه یا در خود فقه شافعی نیست در فقه احناف یا فقه شوافق یعنی فقه بعد سال های این مسئله از اون وقت شروع شد و چون این مسئله از بعد شروع شد یعنی از سال های برم سرون، دویست و سی و به بعد شروع شد شروع این مسئله از اون زمان و لذا به ذهن ما میاد چه اصولا یک عامل دیگه برای این مسئله بود مسئله استدلال فرقی و استظهار فرقی نبوده ولو باید آتا در غم اول و از دوم محور و دیروز عبارتی بخوندیم از کتاب نفاصل محصول که واضح بود که این مسئله تنک تحصیل یک مسئله دیگه که در کلام و فلسطه مطرح شده که آیا معظوم همشه کنه املا یعنی عده ایتون آوردن این مسئله رو می فرد در کلام محتضله که قایلن که محدوم شد معلوم شد که مسئله یه ریشه یه کلامی داشته از ریشه کلامیش به اصول آمده و بعد از اصول به فکره متنک شد رسید نه به این خلاصه یه تحریش کنی تحریش رو در این جاوی ننرشتم من دو مجره امروز خلاصه شد رسیم در عده ای از کتاب احضه سنت باز روی مسئله کلام نصی هم اینجا بحث شده. که آیا یا بر اساس کلام نصی چون بنا بر کلام نصسی یا رفان قدیم بودن و قرآ و خب معنا که خداون در قدیم فرنا یا آیولدین آم و قد وصللا. لذ اگر کلام رو قدیم بدونن، بنا بر طراز قدیم بودن کلام باز فرض کنیم یا عی الد که در قدیم بوده، شامل موجودی یا مردمی هرگ چیه، اگر مثلا بگیم شامل موجودی میشه باید کلام را حادث بگنیم این احتمال هم هست که مسئله قدیم بودن و نبودن آمجا این مسئله تحصیل رو داشته و تصالاتا در کتب و حصول شدیلترین شهره این که قائل به قدیم بودن و قرآن نحمد و این قول بینیم که خطابات قرآن شامل معضوعی میشه دیگه ها نسبت داده شده وحنابه <laughs> این هم معید این مسئله چه نظامی دیدین بعد از سال 2000 که احمد بن حنبل به در چند نفر که کش هستن از زنجیر قالب قدیمی بود راه آموده طولانی دم مهنت عثمانی خودشون تا اینکه احمد هم هر روز شلاق میزن چوب می به احمد بن تا بعد از این بر که برنامه این اصلاً موازا برگزار کوتاخرا علی احتمال که ما می‌بینیم این مسئله سهر تاثیر دو مسئله کلامی وارد اصول شد و بعد آمدن در فقر بر اون سمره ترکیب بزن یعنی سمره پیدا در میشه چون که اولیه با آیات همه سکت میکرد بخشو مثلا نکرد به و لذا را از این از اصولی حتی در اصولی نحل زیدیه نانیده که آنین میخواد مسئلهشون رو بخونن اصلا نمیشه این مسئله قلیاتو سمره سمره روشنی ند صدره این که سمره مسئله نیست، در حقیقت اینه ای نمیزه به احساسیش اینکه اصلا این مسئله میشیگی فرحی نداره یک میشیگی داره در اصول آنده و, و لذا در فکر هم همشون متفقه داره نمکنه هستیه که آیه حالا پرس مثلا شیعه ها که قادل حسن در زمان عیبت هماز خونده دو از جمعه خونده دو شیرانه ما بوده مثلا در قاعده ژانود یا یعنی صلاح و بنیوم جمعه فرسق که این مثلا مخاطبین زمان حسولی مثلا و ایلا ما موردی یکی <عصوح> مورد مثلا در مورد زمهای فیران برمان است قرنه فیبوی بسی کنه که اختلاف کنه اون کتاب شخصیه کتاب عمومی یا نسال نبیه کتاب رونان یا نسال نبیه اون و لذا بالفعل هم اینها در فعل یک سمره واضحی ورش ندیدن دو در فعل اول یک از سالهای 67 سال تا دیست و, دیویس و, دیویس و اثری از این مسئله حسوبی نبوده نه آمدن پتبا رو بر این مسئله محتمی بکنند یعنی یک تنی احرافت ها یا یک نا احرافت ها به مچافه چی این مسئله این مسئله نبوده. و ظاهرش که ها آمدن از طبیعتن سمره احساسی این بوده که آیا زبادر کتاب که بیشم حساس اطلاع داره بیشم حساس عمومه آیا زبادر کتاب برای غایبین و معدومین هم هجیت یا نداره از کردیم این استاد این سمره که زبادر کتاب هجیت داره قبول نفرمیدن اما تمسا که به عموم برای معدومین رو قبول فرمیدن و یک کلام طولانی هم با ساب کفایی که کلامی که برای چون عرضش هرگیه این نداره من متعرض میکنم که من در این بخش سالات هم عرض کردم هنوز هم نفهمیدن که مراد جدی از استاد چیه چون میگه بخش به جهد نمیشه تمره بشه هم ما اگر بخشیم شتاق خواست از توی موجودین و, و خاطرین اساطر عموم جایی اینجا رو میترد کردیم یا اساطر افتا خب اساطر عموم و اساطر افتا ها از زواهر است خاطیدی لیکی از چی به خاصی که ایشون دو سار از همه کرد. کردن ارز کردن این مسئله به حاضر کلامی مطرح شد بعد در اصول امردن و سر وقت همین بود اما این که شیل هدف همین بود بگرد اگر شک میگی این خوب شامل قادمی میشه مفتنیز در این هدف همین بود هدف از برس همین بود که از ارز کردیم در وقتی که فرحه اصلی مدرد شد چی این مذاری از این هدف نگرد و الله حدث که از راست اصلا از تمره بحث و علت غایی این بحث و ترکه این, این بحث و این بود که آیا به اطلاقات برای غایبین برای مثل ما محضومی هم از بشه یا نشه حدث بحث بود و هر کردیم اگر این مطلب هدف باشه انصافش قرده به اولین راهی که نو سیکل به دانست، اون بیان تیکه سلیمین آن راه، نو سیکل تیکه مصلحی رسول الله، مثلا محمد صادق این خلاصه‌ی درسای رو که گذرش، در خلاصه روز خود ما از کردیم. هر از این هستی که آیان گفتن اصولیا ها میشه این مسئله رو در لایه به نحوی دیگه مطرح کرد، از این نحوی که حضرات مطرح کردند با اون ذامیه که من دیروز مقدمتاً عرض کردم خطابات و رو فقهای اهل سنت نوشتن مختلفه بعضی و مخاطبش به نه وجود عینی یعنی مکلتین هستند مثل عقی مسلاح بعضی ها قضاق و حکام و هستن مثل عزانی و عزانی از زانیه و از زانیه این نیست از سالت و از سالت فخت و ما هر کسی رو دست ساره شد کنید یعنی دست و حکومت و دستگاه قضایی این صحبتی که شده ما از کردیم وقتی به ذراهر کتاب نگاه میکنیم این تصدیل در مخاطب مخاطب آممست یا مخاطب خاص افتداعا ما نمیفهمیم. یعنی ما به ارتای لغت به این عقره مصطلح من بگیرم مثلا و ایدیاه ما افتداعا ترکیه نمیبینیم و لذا به ذهن ما آمم بیایم اینجور توجیه بکنیم بیشه این وقتی که شده بیایم یعنی بگیم که این, این نوع تعبیر قانونی است در اون زمان یعنی به عبارت مخرای این نوع تحبیر بوده این ارزش قانونی نداره در اون زمان چون جامعه جامعه بردهی بوده عبدال مولا بوده رابطه رابطه عبدال مولا بوده حتی توانی که توانی که ارشادی قوانین وضعی هستند این قوانین رو به دارت زدگی و هم بگفتن که در اونجا زرش نبوده، اصلا لا توسلده که یا در مارای کل لحمی واسه زرش نداره لا توسلده از کلم مرمون نایمی آقای خوی همشون موظل این حدیث توش مولویت نفا بیده زرش نیست این یعنی که ببر مارای کل ما مانون نخواد ولی زا منتظر شدن که اگر کسی در ببر و شهر مارای کل لحمی نواز ايه نداره ندالو زياره نموذج خاصينه حالا در مرتبه خونامو سرس مودون ام تعبير مثلا نوع دول حثا متعارضات الزمان هم ده ما اساس الاساس و والمواري هذا من از جهت دیگر من اكثر صوتي انا اكثر اصولن جامعه مكه و مدينه جامعه قانوني ندوز مثلا يونان جامعه قانوني یه جامعه بود که قانون هاشم بود تو این جامعه قانون هاشم نبود مثل خود ایران در نظام های شاهی یا به اصطلاح قدیم یا استبدادی قانون نیست اصطلاح قانون یعنی فرض یک حقیقتی ماورار سلطان ماورار سلطه حاکم. وقتی قانون نیست یعنی تمام حریقت قانون متمثل میشه در شخص سلطان به عبارت اون اوکرا قانون کیش شخصیت طرز شخصیت سلطان هیچ وقت هم مدرن نیست هیچ وقت هم اصول نگرفته گفت این آقا مثلا نظر دو قرار پوری مثلا خرده پول الرمزیه مفاسد اقتصادی یه اعدامش کنی کسی Context داره میلیارد خودت کنه کار نمی‌کنه <تصفيق> سلطان هر کی تشخیص داد این تشخیص تشخیص سلطانه است مرحوم ناهی عثمان شلوار در کتاب تاریخ الملل اون صفحه اول کتاب رو از همینجه شروع میکنه یه امروز پادشاه صفات و ربوبی پیگر کرده پادشاه هیچ مسئولیتی نداره هر کار کرد هر تبصیمی رو هیچ مسئولیت نداره اون شو بانون پس در جدیرسال عرب این مشهد و جدیرسال عرب در اون وقت تابهی از به اصطلاح اینکه این که کل جدیرسال یقن تابهی ایران بود. ایران اون زمان. در خود نظام پادشاهی ایران نظام نبود نظام حاکم نبود. خازا همچین قرار می‌داد این میشد تازه دیگه قرار دوره می‌شد تفکر این قانون بر این اساس بود که ما یک واقعیت اعتباری داشتیم که خارج از سلطان سلطان هم در مقابل او خاطر بشه. سلطان هم در مقابل او خاضع باشه همه بدون استثنا هیچ فرز باشی در مقابل او خارج نشه. گفت که اگر فرسیم دختر رسول الله در این بازم مثلا این نستجدو دی کردو دستشه میوریدن چون این قانونه قانون همه باید در همه اجرا بشه در جزیره رساله عرم مشکل احساسی در مکه در مدینه مثلا در اون قسمتاته این رساله قانونی که از خود مرکز آفهای تخت میامن بیشتر نظام اشائری مثلا بود اشیره و اشیره گروهک های سر اشاری و نظام. و اون که عشیره شیخ عشیره و رئیس عشیره هرچی گفت میشه قانون نفذ خود جانه هم توش جامعه بردگی یعنی تمام صحبت ها یعنی نمیان در یه قانون قرار بدن چون عرض به وجودش نبیه که مولاد اون چه که در قانون میتونه تأثیر بکنه اینه چون عرض به وجودش نبیه که چون به وجودش نبیه که مولاد خواهی نخواهی برای عرض قانون قرار نمیگن اون نکشه مثل یه چهاری تعاملشون با هم از آن خون میدونی شما این تعامل در کتوسکه حیوان هم نمیشه هستند در ذهب در بخش ده اشت ده اشت ده حیوان هم دو جوره انسانی یعنی انسان یا غیره انسان عرض یعنی ده اعرض رو تو بخش ده احیوان اشتران رو و حیوانات الان در به مناسی اون این متعارف یعنی در تفکر اونها طبیعتا در این تفکر محنا نداشته شکل مولا با عبد خودش قانونی شوشه روح قانونی وجود ندارستن بین عرض مولا تصور بکنید. شما الان در یه جامعه خاصی زندگی میکنید بلا؟ شما موانیت قانون جامعه میفنن صحبت میکنه دیگه؟ صداد ببینید در, در خب، دو... حالا اجازه من تمام خبره من ميخوام اينو بگم جامعه بر اين اساسه حالا اگر الان به پنجره تمام تمومه ميشه ك آخر درسهاي مقطعي بزن تمام بشه اگه آخرش قابل باشيم برنامه كنيم روشنگيزي بذاريد رو كن حد برابرين این تفكر میاد میگه اينها همه جنبه قائم دار كتابي جدی و عرفي داره این که میگه پس و حسودی ای دیعمان یعنی این که میگه از زانیت و از زانی تجردود یکی از زانیت را این که به تدیر خطاب مامده هشته این که میگه عقی محصولات یعنی عقی محصولات این که به خطاب و آمده جنبه خطابی اصلا در صحیبه‌ای نشده از لحاظ آمونی بوده‌ها درک کنه از لحاظ چرا قبول دارم؟ خطاب جمع اردن اما این مجرد تحبیر اجتماعی است و نذا اصلا این ونس بنابراین اصلا موضوع پیدا نکنه که آیا خواست است به حاضرین یا شامل غایبین و معذومین میشه؟ این اصلا در این جنبه کتابی لحاظ نشده یعنی به هر گونه قرائتی مصلاط مثلا ما در وران داریم از تیم ملحج العمره لله في صيغه خطاب درسته در وران در لله هر ناس به فن صطاله ای حساب ببینم خطاب نیست هر دو یک حقیقتا فرق نمیکنه یکیش به صيغه خطاب یکیش به صيغه خطاب نیست هر دو یک واقعیت صيغه خطاب یک تعبیر اجتماعی نه یک تعبیر قانونی خب داره خب راستید ما اینو قانونی با همون جردون خودشون تفصیل قبول دارم ایشون ما با حد نه داریم مخالب با حقوق حاله ما این رو قانونی به کنیم این خطاب عرضش قانونی نداره که دنبال قانونی شده این فقط این رو ارزش اجتماعی رو در جامعه رو تحییر میکرده <تصفيق> نه عبد ملکی اعتباری لذا الان خوب دقت فرمانه تر بشینه که الان ما بعد از اسلام رابطه عبد المولا خودش قانونیه مبناه قانونی نیست الان رابطه عبد المولا رو هم چه معین میکنه مولا باید با عبدش این طور باشه اینجور دستور بده عبدان باید باید اونم چه معین میکنه اما در اون زمان رابطه عبد المولا تکت فیر نبود. مولا بندشه میکوی، زرمش میزد که هر کار میخواست بکن او چه هیوان میسه با همون رفت از خیلن دیالا ما خود منم خیزارت میزن تو کتاب هست بیه حیوان ننشون دو بسماره. که انسان غیر انسان این بهیه حیوان رو به جور رو برده این تو مسادسه سلامه تقریب دقیقاً حق با ماوردین این یک نوع تبیری چون تغییره دیگه ارزش این بحث قانونی رو که الان اینجا مهمه انجام بدیم نداره این فرض اول و خداوند کتاب نیست ما میگیم همه ازلی در خداوند خلاصش ایده اوف وبال عهود با اهل الله یکی من میخواهم بگم اینو بگم خب در اصل مقدمتاً مدعای من روشن بشه اونو به اون بدی که کتابه. انا لا نو که کتاب می. ما هر دو یک محتوا رو دقیقاً کنیم. در آیه تو در چه حد؟ در حد قانونی یا در حد تعبیری ادبیاتی؟ یعنی بحث روح قانون و ادبیات قانونی. ما می‌گیم هدا اعتبیات نه اینکه ما خطاب نیم. خطاب هست این یک نوع تعبیر مجرد تعبیرش ارزش حقوقی نداره که اینجا بحث بکنیم که شامل حاضرین یا قانونام شامل میشه الله ان چه خطاب نباید این چه مفاده هر یکی یعنی رافت نظام شده خب نه این به اصطلاح در قانون هم هم با تعبیر اویل‌مالی هم با تعبیر قانون و هر دو یکیه مراد هر دوی مراد من روشند تو مدائم منم روشند نیست آلان با الله جای گذاشتن؟ من هم بگم اوفو بالأهود یک نوع تعدیق است تعبیر. على هذا تعدیق منجا جاء الحسن فله هم فله هم حشم عام حکم ها عمر این یارچی خب نماز <عبو> از الفیض الى الفحصیره. خب لطفا صد سیار بر ما لعنت کن لطفا. آیا نه اینجا گد نماز میکن؟ حالا خودمان دریجیم مخالف. آیا نه اینجا گد نماز میکن؟ نمازش باشه لحظه ما گناه نکرد. روز جمعه اگر گناه نکرد. روز جمعه کلیه مخلوقی ما. محمد تعبیر الله علیه و علیه انبار. مگه اگر یعنی او فو بالا بوده مذارشی که سوی از دهان الله. من مطمئن الله. یه جور بانونه لاحن ناسه جورده چور دیگه ایست هم خود کنم هر دوی یک جوره هر دوی یک کنم این یک مثله مثله دوبار حقیقیه اصلا ما این دوید اون قضیه خارجی اون چون ما اعتباره ما خود بیگه اعتبار زایی به نمه قضیه هنیشه ما اصلا ما خود نیست <تصفح> اینجا بحث بست اعتبار قانونی نیست فقط تعبیر مجرد ازدیاته که در جامعه مثلا فرصمی در اون زمان در جامعه مخده اگر که دینه شعبی شد چون نوشتن هم, هم نبود این ازامی بود افترم یه روز نوشته، در قرآن همونده کتب عرض مستیان این نوشتن کنایه از ایک امر اجتماعی در این جامعه اما فرصمی ای توی ایران یا الان تا نوشتیم با کنید نوشتن که ازامی یا تا گفتن کتبه این فرزه این کتبه این کتبه تشکیل دعوی پردازانه این, این تفسیر یعنی اجتماعی در حقیقت تشکیل قضایی نیست تو این جامعه اگر نوشته نمیشه نمی‌تداگاه دقت الان شما نمی‌گید اتهام که توش نباشه این نکته اجتماعی نه یک نکته قانونی که قضیه حریبیه باشه یا غیر یا باشه نه همین از این مجاری تعبیر قدرت عادی تاریخ و نظام به حسب انا شما مثلا ابتداءن اذانیه و اذانی فجر و پشلو. خب این آیه همه مصطفیون ها جلد بکن گفتن نه خصوصا هاشم و قاضی و اقیم و صلات و اوقات و زکار. گفتن مگر گفتن نه این دو تا این با مخاطب این فرق می‌کنه شما ابتداءن وقتی گوش می‌دن فرق نمی‌کنه این چیه؟ اسم این یعنی که ادبیات خاص زمان اجتماعی اجتماعیه ارزش قانونی نداره که بگیم خاص باhazard یعنی اصلا نظر به مخاطب نداره اصلا نظر به مخاطب نداره که آیا مخاطب عامه مکلفینه یا مخاطب خصوص حکام و قضاته یا موذکر و معننه یا موذکر اصلا نظر به ایشت نداره دقیقاً میگم این یک نوع ادبیاتی است که بوده در این زمان به کار برده می ای حال... این حالا اگر در pers سعودی خیلی به قبول نمیشه نمی‌دونم دقیقاً با بحث دیگری که پیش میاد فرق اینه یعنی مسئله چجوری مطرحه مرحوم نائینی قدس الله سره این مسئله رو به این جور مطرح کرد که آیا قضیه به نحوه حقیقیت یا به نحوه خارجی اگر خارجیه باشه خاص حاضری رو میگیره موجودی رو میگیره به نظر میاد که شامله واقعی هم میشه در جزئیش البته بحث قضیه حقیقی و خارجی رو غالبا ما که متعلّم میاریم غالبا ما بگیم در واسو یا میگیم مثلا اشتمال علماء حالاً اونجا گفته میشه ایشون تقییه حریدیه و خارجی در مخاطب بوده غالباً در بحثی که میشه حریدی بودن و های نبودن رو در متعلم میاره نه در مخاطب حالا خیلی خوب در مخاطب به تقییه شونه در مخاطب خیلی اش اینا مثلا بدی نیست این یه توجیه است که آیا ازیه نه نحو غریه است یا به بحث ما همیشه در موازس اصول کنیمی به طور کلی ما وقتی یه تردیه رو تحلیل میکنیم باید تحلیل بکنیم یه نقطه که یه اون نقطه اول ما تردیه باشه آخر نقطه باشه باز نه خود اون نقطه مبتنیه و نقطه دیگری باشه و بریم اون نقطه اساسی و زیر از این که آیا وزیه حقیقی یا حقیقی نیست این نقطه زیر بنا آیا خویش کار کردن که نه؟ نکته زیر زنا این است که کتاب است یا انشااییه. ظاهراً ایج کردیم کتاب هرچیتی ظاهراً جایی که این با آس همون مثلا سنجام بیم. مثلاً در باز کن. ازش میگویم انشاایی کتاب انشاایی. کتاب انشاایی اونی که هر کسی این سفرتی یا یا لرین آمن. میخواد الان باشیم میخواد از سال درس بدی داشته. ایشون فهمید زیر از آیا کتاب هریس یاد این کتاب ها انشاییه از وقتیشون تحریر بود که عدوات خطاب موضوع از کتاب الحقیقی اول انشایی چیزم خیلی عجیب بود چون عدوات خطاب مثل عدوات جمع مثل یا یاد مثل عقیمو غام زنیر جمع این اصولا بعض نشد برای انشاییات کتاب حقیقی سیاه انشایی مثل جاؤ این نرغام جاؤونی مثلا این العلمات جاؤونی واقع آمده زمیر جمعه این اصلا بحثه و تحجیب از مظمومه استاد نمی کنم یک جمعه که استعمال این هم در قبارات استاد اشعال شنید توضیحش بوده است. که من نفهمیدم مراد ایشان ورد یا استعماله اونی که الان در کلمات اصولی هست استعماله نه ورد تصور و مراد اصولی ارزش قانونیه خوب دقیق بکنید مراد اصولی تصدیر قانونیه اول در قانونی به لفاظ خطاب نبیده از مناشه قانون و جلد مثل عبیل و خصوص حاضر زمان قیهنبر یا مانم سامل میشه پس این یک بحث قانونی بحث وضع این ها نیست چون فرمونده بحث از استعمال بحث بر بحث برای خطاب نیست مثلا برای خطاب انشایی و عمید. تعدیل کتاب حقیقی به اینشایی هم که ایشون فراندن و برنان به کردن خیلی واضح به نظر میاد. اون که به نظر ما میتوانن قانون منتر باشن و با اعتبارات قانونی نزدیکتر باشه و البته ارز کردن من التضام نمیدن که اصولی مقردی مرادشون این معنی بودن رفت از اونا زادن متحصر به جوزا مثلای کلامی <تصفيق> بودن که قدیل بودن قرآن و یکی هم مساله ای که آیا مرجو شیءن امدا چون معتزله میگن شد شده مدرم اشراق نیست یا ای به که الان مؤمنه مرجو و مؤمنی وجود نداره یا آمنو. کاملا واضحه که یک مسائل دیگری رو دقیق دیگر اما حالا با نظر از هر طایفه کونا بودن سنی گفتن ما یک قانونی بکنیم و اون بحث قانونی ای این بحث اول بحث قانونی از که در جامعه ای که عبید و مواری باشه وقتی بخواد یک کسی بیاد قانون تو جامعه ورز بکنه خوب دقت بکنی یعنی پیغمبر اکنم قطعاً به مدینه که تشریف بودن و خود و قرآن حالا فرسانتان از تجور کلام و کلام رسول الله ببین این در مقام جعل قانونه کسی که میخواد در یک جامعه به اصطلاح عدید و موالی بردهی وضع قانون بکنه این سوال به طور سوال قانونی مطرح میشه و اون سوال اینه خطابی که به مخلفی میشه مثل خطابی که به مولا به مجموعه عدیدش میکنه یعنی اگر بخیم تفسیر قانونی دهیم خودت فرق بکنیم وقتی گویه یایی لدینا منو علی و سلا این مثل اینه که سر تا برده خودش جمع بکنه بگیر هر کدومتون یک سطح آب بیاری خب یه قفت اگر ست تا برده خودش جمع بکنه بگیر هر کدومتون یک ستل آب بیار. این چیه؟ این <تصفيق> <تصفيق> یا ایه های های های ها من و تو جامعه جامعه بردرید این هم به من ولذا این از لحاظ بکنه اینجا تفصیل وانمت کلامی میتوان نتیجه چی میشه؟ نتیجه از اگر از اون منظره باشه این در حقیقت یک کلامی است که منحل میشه یعنی بگیم برزش یک سطح آبونیتی یک سطح آب این منحل میشه لذا بحث بست محروف انهلاس محروف نایین پیش پیشونه یا بگیم نه این و اون جامعه جامعه بردیست این یک روح دیگری داره این به منظره جمع کردن سطح برزه نیست عرض کردن سابقا اون به اصطلاح سرخالدائی سر سرخالدائی عرض خدیجه و که این ببنه هزان بود دارتنین و معنی به یک معنای تاجر بزرگ به اصطلاح بود بعد از اینکه که مستشون بردهانی بعد از این که مسلمان شد در شهر احباده شنیست که بعد از روز قربان در, به در منا و عرف به اصطلاح در زهوروان در بنا هزار تا برزری بود که هزار تا خیلی واقعا سفام از سنگین هزار تا برزری بود روی جلادشون هر کدوم یه تابلو زده تا اسم فلان میگفتن و بعد یک جور گفتن انصار احرار کی شدید یه روز هزار تا برزری رو آزاد می‌کردن همینو حکیمه حزام بعد اموالی شدن اینجوری خب این وقتی میگه انصار احرار کی تبیل الله متعال و صلی الله یعنی این, این بحثه آیا خطابات قرآنی قدفت بکنید که در جامعه بردگی آمده این خطاب در حقیقت منحل میشه به عدد افراد مخاطبی این واسه که به صد تا برده هر کدون در افراد آن یا نه و جامعه جامعه بردگیست خطاب منحن نمیشه این یک نفت جدیده این صد تا برده جمع کردن نیست این مؤمنین رو در نظر می لایوم الکیامه اهل ایمان رو در نظر می گیره این صفت در نظر می گیره این یک تعبیر جدیدی است اگر در زمان رسول الله این تعبیر گفته میشد تفسیرش می کردیم به خطاب بردگی یعنی جنم دادن درزه ها اما این یک کتاب قانونی است در کتاب قانونی جمع نمی کنه عنوان رو در نظر می گیره مؤمن رو در نظر می گیره مؤمن اله میگه مومن نماز بکن مومن نماز مومن و نظام ما بیم, بیم, بیم که آقا ما دو سن خوب دقیق از نظر پانی دو سن خطاب داریم دو سن تفسیر داریم برای خطاب خطاب جمع و طبق این دو سنخ دو سنخ ها خوب در قصد بکنی یه سنخی نیستن نه قضیه حقیقی و خارجی که برونمی نکته. نقطه او از این قضیه حقیقی و خارجیه به این نائمی هم همین مثلا رو قرم اگر جمع کنه عدیب بایش میشه قضیه خارجیه اگر آنها این معامل میشه میشه قضیه پس اون تفسیر نائمی مراد جدیش اینه. البته نابی تعبیر از قضیه حدیبیه ما یه توضیح تاریخی اجتماعی هم برش دادیم یعنی بودیم زیر بنای قضیه خارجی و حدیبیه زیر بنا اون زیر بنا اینه که یا ای اهل دین مثل یا حدیبی یا حدیبی افعلوا کذا اگر از قضیر یا حدیبی قطعا در نظام ابی و مالک یا حدیبی افعلوا کذا قطعا انحلال و قطعا قضیه خارجی تعبیر نابی و قطعا شامل حاضری میشه، اصلا خیرون عدید شامل نمیشه. پس این کمتر تا و گریسته شد، لطفا هر کدام شان اکثر ذابگیر. کشن نهفوق خاص ونی نیست، اون سیتات را چهارم میشه. این در آیه کتاب خاص تر به حاضری، حتی قائدین رو هم شامل میشه. قائدین هم شامل نمیشه. شامل نمیشه. شامل شامل نمیشه. پس ما این تفسیر رو بکنیم. سوال آیا در زمان رسول الله یا ایوهالدین آمنو احیم و صلاح و ما در اون زمان چه می فهمیدیم عصر مطلب اینه و پیغمبر اکرم چی جور اراده کردیم؟ یعنی فهم ما از یک و اساسش اراده قائل و متکلمه یا ایوهالدین آمن. مثل اینه که میگه ای ستا برده من که اینجا جمع این کار رو انجام بدین اگر از این قبیل باشه شتاب خاص به حاجرینه یک اصطلاح قضی یک کارجیت اصطلاح نارونی خطاب حقیریت اصطلاح های خویی پس ما به جای خطاب حقیری و این یک تفسیر قانونی ببینیم براد ما از تفسیر قانونی بگیم ما وقتی این خطاب رو مخیلی تحمیلی بکنیم که انما خطاب به سر برده شده این یک اصطلاح بگیر نه درست در ممکن است که این به بهمن اما این اسلوب جدیدی جدیدیست یک جدیدی است که پیغمدر اکتا قرار داده و در این رداشه جدید خطاب به درده نیست خطاب به عنوان عنوان مؤمن یا ایه هایی هنگی نامنون مؤمن رو بخواسته قرار بده این مؤمن میخواد حاضر باشه میخواد قائب باشه میخواد موجود باشه میخواد محدون باشه هیچ فرق نمیکنه. این رعای خوی عزیز تحریف هم به خطاب اینشایی مرحوم ناینی از تحریف و قضیه حقیقیه ما یک تفسیر دیگه دیگه هم محلطه این هم دیگه گفتیم دیگه ما گفتیم که آیا ما خطابات قرآن رو به نحل خطاب بعدی تفسیر بکنیم یا به نحل خطاب به عنوان این خطاب به عنوان چه اسمیشونی خطاب قانونی خطاب بعدی رو اسمیشونی خطاب شخصی میتونیم این طور از آیه این از دلیل خطاب شخصید یا از قویل خطاب قانونی یا ایوهل لبینا آمنو یک ردش جدیدیه ممکن بوده عرب اون زمان هم نزنه خب درد بکنید قرف اون زمان هم نفره در این خطاب عنوان عنوان مؤمنه کاری با حاضرین و موجودینه در اونجا نداره او عنوانه پس بنابراین این راهی که در تحضیب الاسوب رفته که توشن خطابات قانونی اینا مجموعش یک به نظر از این تحلیل شما ارائه کردیم قانیتر و علمیتر و حققیت نکتار تایش بهتر مرکزه. پس خلاصه تحلیلی که ما عرفن تحلیل ما یک اولنطرز اول ما بود که اینها خطابات فقط ارزش تعدیری دارد هیچ ارزش قی ندارن حالایم شخصی یا شخصیه دیی؟حتا جنبه یک کتابی که شده. این احتمال طبعا بنا این احتمال، خطابات قرآنی از قبیل جعل قانونی اصلا نظر به مخاطب نداره این بحث موضوعیت نداره که شامل قائبی میشه نمیشه شامل معضوعی از موضوعیت نداره این بحث. این احتمال اول ما احتمال دوم ما آیا این خطابات از قبیل جمع عدیده یا از قبیل خطاب قانونی یعنی رو عنوان ملاحظه کرده شامل. انصاف قضیه اگر ما باشیم و جامعه در جامعه در اون زمان قصه هم جمعه عبید جای اینجای شکش نیست وکه شواهد قرآن شواهد عمل فقها، ها عمل صحابه فقها ها حاکی از این از که معنای دوبغ رو فکر یا ایه هلگی این آمنون میاد عنوان مؤمن رو خطاب قرار میده نه اونجایی نفر که زد نفر جیسی که محصول حاضر بودن یا پنج نفری که زمان رسوله تو مدینه بودن یا خارج مدینه چند میلیون، ملیون این کلان چند نفر بودن چند ست هزار نفرانه این نیست مراد خصوص اون افراد موجودی نیست بلکه مراد یک معنای عام نیست که من خدمتون از فرس بنابراین به نظر ما فرونده این هم همچنین که از اول مسته بود در خیلی اسلامی بهتر نیست که امروز پسته بماند چون مطلب متفقون علیه اختلافی که هست در تفسیر بنابر اخت... راجلو که ما مطرح کردیم این دو تا... این نظام یک اثری داره اگر قائل شدیم مجرد تعبیر هیچ اثری نداره اما اگر قائل این در آن ان بین خطاب جمع حویر یا کتاب قانونی اثرش اینه که آیا قائل به انحلال بشید یا نشید و عوامل بین انحلال شدن یک لوازم دیگه تو قانون داره باب خاصی رو برای خودش باز میکنه بحث تظاهر نظر داره هم. نه خیلی موارد سازگاریه که ایدئولوژی میشه و به نظر ما این بحث به این لحاظ ارزش داره یعنی این ارزش اصولیش محفوظه نه اون ارز... فرقی رو که آیان واسه یه دو فرقی که این هر چیزی قبول کنه قبول نشه نه اون نیست فرق اساسیش این و به عبارت دیگر فرق اساسی این تا این میشه که آیا شعره مقدس در به اصطلاح ظرف انتصال رو هم نظر میکنه ظرف خارج رو هم نظر میکنه یا نمیکنه به انصافاً عرض کردیم ما اگر باشیم زواهر قانونی نظر نداره اما بعضی از روایات در لوازه مقدر دیگه هست و از ادله عدلد نظر به مقام امتصال هست به سیاق مختلفه سابقه مختلف کردیم این جاش اینجا نیست خلاصه وقت این شد که حق این است که خطاب خطاب قانونی بله چیزی که هست با ملازه مجموع روایان حالا یه اون طول میکشه شاید بتونه انسان استظهار بکنه که در شریعت مقدسه جنبه های مقام انتصال در نظر گرفته شده و لذا ممکن است بگیم روحش روح قانونه اما تعاویرش تعاویر بکارورده تعاویر و عبیدان موالیه به لحاظ تعاویری اما روحش روح قانونه این دیگه توضیحش احتیاج به شرط دیگه داره که این روز دیگه وقت ما هم تمام شد میشان الله اون وقتی یک نقطه دیگر یک نقطه دیگری هم مرحوم استاد پرموندنی که عرصتان روشن نیست اون نقطه اینه که ازدهی متعرض شدن که مثلا به این که این آیات اصولا مضمون آیات بر قلب رسول الله ناظر شد این عرفاز رو خود رسول الله شدید اصلا این عرفاز مال رسول الله مال خدا نیست خدا مضمون اصلا وجوب صلاح پیغمبر تعبیر فرمونه به حرفی این مطلب هم مطلب بدین، این کن یعنی این مطلب که درست نیست روی این مطلب هم باز نزاع میاد آ نزا درست مضمون رسول الله با قلب خودشون تلقیه برد فرموندن و که این بحث مطرح میشه در مقام تعبیر تعبیر حدید و موالی رو به کار بردن یا تعبیر قانونی بعد هم بحث جای خودش داره این طوریست که بناهان علا حضا دیگه برد صافش بشه که ظاهر عبارت استاد، قصد برد و عبارت و قصد داره این راجع به این مسئله مسئله بردی انشاءالله تعالی. تعقب زمین به برد از اف که اون روز آرای نسبت نسبتا مفصلی اونجا هست عبا فاری هم موجود هست که چون یک بحث طولانی کردن که به نظر ما محصلی نداره ان آنجا الله اونجا هست. چاره هم دیگه